به نام خدا من مراد این پور هستم عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و امروز خدمت شما هستم که یه مقداری از به بفرمایید من بعدیش ارزم به یه بخش کوچیکی از تجربه‌هامو که نمیشه اسمش رو گفت چرا که تو این چند وقته به شخص لمس کردم در مورد استارتاپ های غیر انفورماتیک و کامپیوتری خدمتون عرض بکنم من حدود تابستون سال 2012 بودش که از انگلستان برگشتم ایران و از روزی که برگشتم سوادایی که هر روز جواب میدادم که چرا برگشتی بعد هنوزم جواب خوبی ندارم خیلی که بهش بدم نمیدونم برگشتم دوست داشتم اینجا باشم دوست داشتم ببینم میتونم تو ایران اونجوری که و داشتم کار بکنم و و خیلی چیزایی دیگه که دوست داشتم و همچنان هم دوست دارم که انجام بدم. زمانی که من برگشتم هنوز هم دوشن نبودش که میخواستم چی کار بکنم. یه انجمن ارتوپدی ایران توی ماه محله جلسات فنی داره. کل جراحان ارتوپدی ایران جمع میشن و حالا کارهای خاص خودشونو انجام میدن. من به صورت خیلی اتفاقی توی اون جمع بودم و یکی از دوستان که حالا از قضاوی روزگار بزش که ارتوپد هم بودش اونجا بعد من پرسید که فالا میگه تجهیزی هستش به اسم پیشن اسپسیفیک اینسترومنت بنا گویاهای سفارشی جراحی هستن میشه اینا رو تو ایران درست کرد اون زمانی که شرکت بلژیکی اینو شروع کرده بود و انجامش میداد برای من جذاب بود نه به با واسطه اینکه به ارتوپدی علاقه من بودن. 3D پرینتر بود منم خیلی از بچه فورد تحصیل از دانشگاه اومده بودم بدون چید پرینتر خیلی برام جذاب بود یه زردم فاینال من بالا بودم یه سری چیزای دیگه هم حالا به واسطه تحصیلاتمون یاد گرفته بودیم اومدیم ببینیم که خب میشه باهاش کار کردیم، بهش گفتم باشه که اونوقت انوز نامه توی دانشگاه تهران مشغول به کار بودم نه هیچ جای دیگه خیلی وقت آزادی داشتم و بودم باش شروع کردیم و یه مقدار مطالعه کردیم یه مقداری بررسی کردیم که اصن چیکار باید کرد به با معنی باش چیه کجاها باید رفت و نهایتا اتفاق جالبی که یکی از مکاتی که میخوام حتما بچه که علاوه مندن به بحث حالا اسمشو کارافرینی بذاریم، منتور خوبی پیدا کردم من به صورت خیلی اتفاقی داشتم توی اساتید دانشگاه میچرخیدم ترکید میکنم اون موقع هنوز گونه سمت آکادمیکی هم نداشتم خدمت دکتر فرحمند رسیدم توی دانشگاه شریف، یادم نمیره این روز توی آبان ماه بودش اینجوری بدون قرار قبلی چون چند بار تماس گرفتم بدون نمیرسم چه مزایایی داشتم رفتن خدمتشون در رو درو زدمو اینی که میگم اینن چی چیزی که اتفاق افتاد گفتم سلام ای دکتر من هم فارغ التحصیل امپریال هستم دوست داشتم با شما کار بکنم خب تو همین بیت خیلی ساده نمی دونانن خیلی هم انتظار گذاشته بودم که نشه اونم خب منطقی باشه هرچی باشه میگه نه دیگه نه. ولی شد ایشون خیلی لوث کردشو ببینید این بحث به نظر من خیلی مهم هستش بچه ها موقعی که شروع میکنن توی بحث تک ما معملا استارتاپ رو با بحث تک یکی میدونیم نمیدونم شرکت های مثل نمونه های موفقه که داریم تخفیفان نمیکنم بعد حالا شرکت های خیلی زیادی که میخوا همهعرض ببرم حس حتما قلم میافتن توی قسمت غیر تک من حالا خودم شخصا میخوام روی تجزات پزشکی تریفکنم می توان کار کرد همه میگن تیز پزشکی مافیا داره نداره. من من نیستم به ماجرا. میگن نمیشه بهش ورود کرد، سرمایه میخواد نه، حالا میگم این داستان من دوستان خیلی خلاصه چیزایی رو عرض بکنم که البته میشه کار کردش. یه ذره باور میخواد نه از این حرفای کلیشه‌ای نمی‌خوام بزنم، جدی باور می‌خواد. بعضی موقع گیر میکنیم. بعضی موقع کلافه میشین تا صحبت بیدار بمونین جراحه قبول نمیکنه. اصلا مایندستشون با ما فرق داره. باید کار بکنیم باشون. اگه می‌خوایم کار بکنیم یکی باید به‌کلی با رو بذاره کنار من قبول میکنم باشه من حالا هر چیزی که هستم این فیلد رو وارد نیستم وارد میشم منظورم رو میارم پایین بالاخره وارد اینتر دیسیپلینری شکل بگیره بین یه شکل بگیره اتفاقی که افتاد توی اون بحث ما با آقای دکتر فره حالا یه سری ایشون راهنمای که به‌کلی به دا ما دادش رفتیم با چند تا جراحا صحبت کردیم اینکه میشه همچین کاری کرد یه سریا گفتم خوبه یه سریا خندیدن به ما یه سری گفتم جنس آمریکاییش هستش تو موقع امریکایی نبودش ام... فقط بلژیکیه جنس آمریکایی هستش کی ایرانی می‌خره همه اینا رو گفتم بعد من یادم حرفی افتادم حالا خاطرم نیستش دقیقاً از اه... کی هستش ولی گفتم بودش که شما موقعی که چیز جدیدی رو ارائه میدین اولش که شروع میشه تحریرتون نمی‌گیرن بعدش می‌خندن به بعدش باهاتون مقابله می‌کنن فقط بعد از اونه که ماسا میشیم. و اگه این مراحل رو طی کردیم و یا دارین تیم، اگه بهتون می‌خندن خوشحالشین. بدونین که مسیر درستی داره فکر نکنین که اگه دارن میخندن خب نه، پس من حتماً غلطنام. نه. نه، این پروسش طبیعی هم هستش. و حالا به هر دلیلی تو ایران ممکنه اگه مثلا میگن اونجا 4 ساعت طول می‌کشه، اینجا 5 ساعت طول بکشه. که نمی‌شه. خب، بس به این داره که چقدر روش زحمت بکشین، چقدر وقت بذارین. ما شروع کردیم یه شروعش امام ما اینی که گفتم که هیچ ازینه زیادی نداره شروعش دقیقا خاطر هم هست دو تا کامپیوتر بود دو تا دسکتاپ بعد حقوق یک ماه دو تا از فارغ التحصیلان دانشگاهی که می‌خواستیم اونجا بزنیم که این, انجام این شرکت رو انجام بدن این کل شروع شرکت هیچ بیشتر از این نبودش یعنی گفتیم که خب طایش اینکه اساس می‌گیمش دو تا کامپیوتر قال که, که دوباره میشه فروخت اونم خدا حقوق ماهیانش رو می‌گیرن یا میشه یا نمیشه. همیشه این راه فرراده رو را من من پیشنهاد میکنم برای خودتون قائل شیم. چون شما اگه راه فرها نشه بشی همیشه پس ذهنتون یه حدیثی هستش میگن که اینجوری تو ذهنتون باشه که فردا ممکنه ببینید در این حال هم اینجوری تلاش بکنید که ممکنه سالیان سال بخوایید زنده بمونید. همینا میشه تو بیزنس هم پیادهش کرد. شما لازم نیستش از روز اول فکر کنید من قرار این بیزنسو پنج نسل دارم نه. میرم دوست نداشتم پس فردا تن... کنسلش میکنم. یعنی فرار فرارو داری در این حال ولی تلاشت هم به که نه من میخوام یه شرکت مارتی نشنال باشه مثل آی بی ام سالیان سال کار بکنه خب اصلا دلیلی نداره کوچیک باشه آمال آرزو هامون شما آرزویی که یه تاریخ برای قائل شده باشید میشه هدف هدفی که برایش برنامه داشته باشید میشه چیزی که بهش دست یا خواهید یافت خب خیلی ساله از اینا توی بیشترش ذهنمونه. نمیگم تمامش. بعد راتون این بحثی که بچه ها میگن مافیا داره خیلی من از خیلی از بچه ها شمیدم. اینه که میگن که مافیا داره این مسئله. تحصیل پزشکی توی ایران. من به خاطر اینه که تحصیل پزشکی حساسه. با جون مردم کار داره. جای خطا نداره. خب یه مداری سختگیری رو شاید بگیم، نه نمیشه گفت بیش از هر. FDA هم خیلی از ما اذیت می‌کنه. سی، باقایی حالا رگولاتوری بادی‌های اروپا خیلی داره ما اذیت می‌کنه. تعارف نداره. یک فرد زنده‌ست، شما کوچیکترین اتفاقی براش بیفته، ما حالا هر چیزیام که بسازیم، من خودم بک‌گراند مهندسی مکانیک هستم. یه قطعه رو بسازم تهش یه فرج بفرم. هم. حالا همیشه مکانیک‌ها رو اسوسییت می‌کنن با اتومبیل. البته نه بی‌انصافیه، ولی در هر صورت اگه ماشین خراب بشه، تهش خراب میشه دیگه. کسی حالا لزومن میتونه نکشه. ولی شما فرایند درمان یه نفر خیلی ایجاد بکنید کم مشکلی ایجاد نکنید نتیجتا مسئله که اتفاق میفته بچه چو چون نمیشناسن این بدنهایی هایی که قوانی رو توی ایران تدویم میکنن دو سه تا بیشتر نیستن سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هستش اداره کل تجزاد پزشکی هستش و چند تا بدنه های که دیگه که باقولی حالا مثل فرد و فرمان رویان و پاستور و امثال هم اینا رو بشناسیم این خیلی هم آدم های باقولی کمک رسانی هستن از منظر من میازی نیستش که باشون هاشون انجام رو دوستان رو میشه با تعامل کرد، معمولا هم کمک میکنن توی داخل هم دوست دارن چون اتفاقی که افتاد، ما زمانی که شود کردیم همین حسش که داخل گفتن ند ای تاجو بعد قبلی داشتم ما گفتیم که خب حالا ما هم انجام میدیم بدن دانشگاهی نمیدونم اون زمان دیگه من هیترمی شده بودم و جز دانشگاه تهران شده بودم گفتن که خب حالا دو تا هستی باشه امتحان خوره گفتیم باشه اتفاقی که افتاد این بودش که به ما یه سری امتحانای سخت دادم ما گفتم میصن باز بفرمایید یک کیسه به خصوصی رو میخوان ده برابر پیچیده تر شده بود وقتی پدر ادریه بغلی شب بخوابی میکشیدیم اجراش میکردیم خودم هم انجام میدادم یه سری زیادی شد تا برسه به اینجایی جایی که بشه ارائهش کرد نهایتا بعد از یه زمانی که گذشت قبول کردم دلیلی هم که داشتش حالا الان خدای رو که دارو خیلی اوزای خوبی داریم ولی تو بحثی که من عرض میکنم بحث تخصص پزشکی و نگم تابیس مفصل و مفصل مصنوعی ایران حقیقتا هنوز ما اون که بایدو رو نداریم و عمده محصولات، محصولات اروپایی امریکایی، پستش آلمان، انگلستان، خود امریکا یکی، دو تا هم اگه اشتباه نکنم فرانسوی هستش به جز اینا های بنام حد دقیقا انجام نمیدن خب، بس حالا این بسر یکی میاد میگه من میخوام جنس ایرونی نه اینکه واسه اونا باشه، یک کناری، یه محصول کناری هستش که من عرض میکنم اینا همه رو صحبت کردم اون خیلی بقولی، یه سوی هم موافق بودن این سای مخالف بودن تا رسیدش به جادر یادیم بکنیم از محوم های دکتر مددی که از حسایی بودش که خیلی به ما باور داشت باورش هم من آسوم و دست نعی برده بودم پیادنه اون موقع صبح میرفتم کلاس تدریس میکردم هفتونیق صبح کلاس های من بودش رو یادی تدریس تجریز میکردم بعدش پشبندش میرفتم، اتاق عمل ایشون دست می‌شستم، تو اتابه عملش با می‌ستادم تجربه‌شو بکنیم، کس بکنم و رسید به این‌جایی که نهایتا ایشون که خودش خیلی سخت قبول کرد ما رو تبدیل شد به بزرگترین حامی‌مون و هاشیه کنگره اوردی بهش ما بود که ایشون عمرشون رو به شما دادن که خب ما حامی بزرگ از دست دادیم ولی توی سه سالی که معطمه بعد بدخوردار بودیم باعث شدش که تونستیم قد بکنیم و بررسی به اونجایی که خب شرکت های دیگه هم اومدن مسئله و به واسه تایی که کسب می‌کنیم، تونستیم یه سری چیزا رو یاد بگیریم چیزایی که جاش خالیه و به اعتقاد من تو خیلی از فیلداجای این تیب مساعد خالیه من یه مطین رو میخوندم ما راجب محچفا داشتیم بررسی می‌کردیم تنها بررسی میدانی که وجود داره از اندام مرتبط با راه رفتن ایرانیان عملا میشه مربوط به یه بررسی که شرکت کفش ملی انجام داده فکر میکن کنم بود چه برده سال پیش. کفش های ملی بوده ما زمانی که بچه بودیم خیلی هم زشت بودن. هم, هم, هم از همنا میپشیدیم کف های لاستیکی داشته شو هم همان یه شک بودن. اون کفش حالا کاری به زشت و زیباییش ندارم برای آناتومی ایرانی طراحی شده بود. ما قبول بکنیم آناتمی اون فردا ژاپنی ها آناتمیشون از امریکای پوچیکرهدانمه های کوچیکری دارن. لگنای کوچیکتری دارن نتیجتا اون فرد فرمای پروتز لگنی که به پای امریکایی می‌خوره پای زاپونی رو می‌شکنه خب ما هنوز داریم بدون این مسائل بدون بررسیش حالا اگر هم بررسی کرده باشیم بدون راه ای داریم از همون استفاده می‌کنیم یکی از چیزایی که ما تو همین بحث به نتیجه رسیده بودیم بودش که زانوهای ایرانی کندیلاش برخلاف عرف اروپایی‌ها ما فرق داره حالا بگیم که نه عین همین میدونم جنس اروپایی خوب باشه جنس اروپایی خوب اصلا دستش رو درد نکنه عالی ولی برای ما ساخته نشده. ما میتونیم ورود بکنیم پس هم نداره تررائیش میکنیم باشه اصلا میگی که یه بخشی یه تکنولوژی خاصی ازش نداریم آقا اروپای تیدشکن آیا تولیدش تولیدشکن. ولی برای ها مال خودمون باشه ما طراحی رو خودمون انجام داده باشیم. من نمیخوام اینجا آباری خیلی. پولانی صحبت می‌کنن ولی یکی از چیزهایی که حالا آقای دوتچینی مفصل‌تر راجع بهش صحبت میکنن اعتقادمون اینه که بچه ها میتونم تو ایران برا خودشون نمیگم کار برای خودشون نمیان کارآفرینی برای اینکه بر وقیه کار درست چرا؟ اول بقیه خودشون هم میخوان پول در بیارن نه پول در آوردن نیست ثروت آفرینی ایرادی ندارد حالا به نظر مناویر یه پست بزرگم هست یه امتیاز میتونی شما ثروت آفرینی بکنید هم همدری کانتریبیوت می‌کنی به اقتصادت بعد اونجا مهم‌تر خودت هم منفعت می‌شی هیچی رادی نداره این قضیه خب جاشو باید پیدا کرد جا پیدا کردنش هم صرف هم با تلاش پشتکاره و اینی که از بالا پاییناش نترسن بچه‌ها معمولا دانشجو میان دنبال اینن که یه ساله به یه نتیجه برسن خب اگه من معمولا دیگه میگم که یه ساله مثلا برسی بدونم نمیشه خب اون سه چهار, چهار مرحله‌ای که گفتم هر کدومش یه سالی طول خب اینو باور بهش داشته باشی آروم آروم بریم پلن میریزی دو, ما... دو ساله انجامش بدی چهار سالش کن کنارش هم گذره اه... یه چیز ای برای خودتون در نظر دو که فشار نیاد اینجوری نشه که طرف همه هستیش رو بذاره روی این قضیه اما از اون طرف هم یه... اینا همش بالانس میخواد انگلیسی‌ها های مثالی دارن میگن که به پول پولت رو بذار اونجایی که حرف و دهانت هست. منظورش خیلی قشنگه من اگر یه ادعایی میکنم اگر باولی یه صحبتی میکنم که زن خودم بهش اعتقاد دارم اعتقادمو باید نشون بدم من باید روش خرج بکنم باید روش تمام بزنم خرج من فقطم پول نیستش یکی سرمایش زمانشه یکی سرمایش دانششه یکی سرمایش واقعا پولشه ان با اقسامش ولی باید روش تلاش بکنیم روش زحمت بکشیم اگه بذاریمش کنار همیشه شکست میخوره گراند دا... توی ذهنتون داشته باشین استارت اپ ها تقو حالا آماری که میدن توی حالا حتی ریسنترهای بزرگ از 10 تا 9 داش فای میکنه خب از فیلتردارم نترسین شما یه سری چیزایی به دست میاری که میزنی خب یاد میگیرید بعد با پولم سر و کار داشت بعد چک هم بکشن با بانک هم سر و داشته باشن اصلا مالیات چیه و چهجوری من برم کجا از... کجاها شرکت های دانش بنیان کدوماشون از مالیات معافن مثلا چه محصولاتی هست مثلا مارییت ارزش افزود رونششی همون شنیدین نه درصد میلی توانش توی اداره کردن یه شرکت کوچیک چیه ؟ اگه نکنین جریمه میشیم. خب اینا رو میتونید تو اولی یاد بگیرید فکر نکنین که اگر کنین اولیش هم خور بعدی ها هم شکست میکنه اینا تجربه ازرانفر اسکیل زن. اینا رو یاد میگیریم به بعدی به بعدی و بعدی هاتونی می رو میکن و دقت کرده باشیم توی حالا سیلیکون ولی که همیشه بنبانه مهد استارتاپ ها شناخته میشه یه سری انجیل اینوستر هستن جالب بدونی دو تاشون هم دو تا برادر ایرانی هستن برادران پرتوی آدم های بزرگی بزرگان بعد میسازن یه ذره متادره بشه اونا انجیل اینوسترن چیکار میکنن صرفا هم میان، همین منتور میشن برای شرکت استارتاپ متفاوت و اینکه چیکار انجام میدن من صحبتم خیلی طولانی شد بقولی تنها مسیجی که دوست دارم اگر, اگر مسیجی وجود داشته باشه اگر می که به خونه ببریم اینه که تو ایرانم هم نیشه صرفا استارتاپ ها لازم نیستن تک باشن تک به معنی عامی که افتاده کامپیوتری نه تو جاهای دیگه هم الان هستش پارک های می فناوری رو برین سر بزنین ایده میگیرید میتونین ازشون استفاده بکنین و از حمایت هاشون و از اون منتور ها و کسایی که میتونن روح باشن استفاده بکنین انشالله که همه رو یه روزی به عنوان کارافرین ببین تشکر میکنم از فراسی دفت